چلوت بود که ناگاه رشه قلمت حقوق خدمت ما عرض کرد بر کرمت به نوک خامه رغم ای سلام مرا که کارخانه دوران مباد بی رغمت نگویم از من بی به سهر کردی یا که در حساب خرد نیست سه و برغلمت مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت که داشت دولت سرمت عزیز و محترمت بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد که گر سرم برود بر ندارم از قدمت زهال ما دلت آگه شود مگر وقتی که لاله بردمد از خاک کشتگان غمت روان تشنه ما را به جرعی دریا چون می زلال فزر ز جام جمت همیشه وقت تو ای ایسی سبا خوشبا که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت